بسم الله الرحمن الرحیم دوره مبانی فقه نظام ساز استاد تهرانی شاکر رست پاس بذارن که این توفیه امایت شما خدمت شما بزرگوانان باشید موضوع بحثی که خدمت بزرگوان هستین همون که حتما مستحضر هستید روی کرد شناسی فقه نظام ساز هست چند از وارد بحث و به صورت تفصیلی گفتگو انجام آمدیدیم چند نکه رو اجمالا مقدم افتان منتون ارز کنم و یکی از مشکلاتی که ما در مواجهه با نظریات مختلف اصاقی در حوزه تبه این هست که هر استان استداق خاص به خودش را برزی کرده هم. تا حدی که خب این اصطلاحات حتی عنوان نظریات رو متفاوت کرده برخی از اصطلاح حکومتی رو ترجیح میدن اصطلاحات نظام رو و حالا به خب اجتماعی و انصالی خب ما وقتی که آغاز بکنیم، کنیم قاعده از این نقطه یعنی شنافت اصطلاحات اساسی آغاز نمی کنیم اول چون اگر بخوایم این گونه پیش بریم یکی بخش موسته از بحث ما در گلیات اصطلاحات الولیات روی ها باقی خود ما میخوایم خواییم دقیقا اونکه سر اصده هم وسط اشتهاد کجاها داره تفاوت ایجاد میشه، کجاها محل نزاع؟ پس این یک ون زمانی که حقیر بناس مسطع بزرگواران باشم در واقع دو تا نود این بحث با این گسترش رو نمیشود به تمام ارائه داد لذا من جهات مختلف ناگزیرم بعضی از مطالب رو کنار بگذارم قاعدتا در جلسات صبح دوستان بعض از مطالب رو مرور کردند به بحث مبانی قاید سنگا بروندی به سوائد نخواهیم داشت عادتا این ها داشتن و از اون طرف فرض بفرمایید که خب ما در تقریری که در دیدگاه هرساتی داریم انجام بودیم با سه بخش چرایی، چرا یک استاد ای به این درده رسیده است چیستی، فقه مطلوبش از چیست، چی شکلیه، چگونه تعریفش میکنه و چگونه کی این فکر حالا در عمل چگونه میخواهد ایجاد بکنه فرایند استنباتش چگونه چه ردش هایی دارن؟ حقیل اینجا در از اون قسم اول هم صرف نظر میکنم یعنی شرایی رو هم در نظر نمیده پس نکته اول اجمالا اون شد که ما در برودمون از این کلیات و استداهاد و اینها از این فرایند وارد نمیشنم نکته دیگر این که با نگاه کلان نگر هم وارد نمی یعنی این گونه اینست که خوب نظریات مثلا سه دسته هستند زند, زند. فقه موضوعات، فقه نظامات مثلا کفه سرپرستی از ابتدای از گونه تقسیم بند و همه رو جای بلیم. نه این تقسیمات از کجا؟ مرحفت شده کسانی وارد شدن مطدر کردن یک بهیت آقا رو دیدم این آقای رو ایشون این رو شون می بعد از ورای اینها یک کلانی به دست دستوردم ما این نگاه کلان رو از اونجا که ظهرم دوستان از مضل استصالگر آت و جای محملی هم استفاده خواهماه کرد این بخش رو به ایشون یک تقه باگذاریم ما تلاش خواهد بود که همونطور که عرض کردم کردن وسط زحنه اجتهاد و استنباط بگید با نگاه جوز نگرانه همونطور که کسی که میخواهد می نظرها را مدل می کند میآید یک نوعات افترا و اشتراک را میبیند و بعد فکر میکنه من یا چگونه تحلیل کنم با شما همین گونه پیش خواهیم رفت بعد خودتون ببینید خانه یا چگونه در نماید. تقسیم کن پس این اجمال فضای ما در بحثی جمع بندی ما در مورود به از کلیات اصطلاحات طرف نظر میکنیم. نگاه کلنگرانه وارد نمیشیم دقیقا میدید سر سحنه کجاها دردقه ازادیک شده و محل اختلاف شد نقطه‌های های محل ازقدام و آرایی که حولش هست رو بررسی میکنیم اجمالاً اون نظریه ها رو هم به شما و جلسه به این بعدتون باغذان اگرچه تا حدی در خلال بحث ما خواهد این خضایی کلی بحث یک نقطه هم که ارز کنم خب تعدد اساسی زیاده و مبارس هم واقعا گستردن شما این دوستان جلساتی رو برگزار میکردن بعضا نظریه هر استاد در یک جلسه یا دو جلسه ارائه میشون خود حقیر منتقد اون جلسات رو برگذار یعنی از اصادی نبیادش رو نمیشه توی جلسه خلاسه کرد شما چطوری؟ گفتن من میخوام نزادی فیلان مستاد کنم به رفت بیشتر از این بنابی سرم شما خلاصه میکنید یک کلیات در میان یک کلیات که عملاً حاصلی داشت به کلی گوی تبدیل میشه حالا من تو دو, دو رو کرد ما رو در مجموع بگیم ای قاند نقلی یکی به یکی اصافید بیرون بیریم و داخل بشیم اینجا هم طبعا تمام نظریات رو به تفسیر نمیتوانیم به پردازیم اگر ببین پیدونه برود کنیم یعنی سلی سلی جلسان درد با خلاصه یک ترم یک خدمت و به تفسیر یعنی جدی هرشون کنیم واقعا واقعاً یک و یک محد به افتراخها که اونجا کامل به تفسیر کنیم ولی یک جا مثلا هر سر فصلی که از پاهمکرد در حدیدی که فرصت جلزه اقتصاد در فرصت حقیل اقتصاد داشت که داده ها از اصافیت جمعوری بکنم همون مقدار رو گذاره شد لبان که مثلا زیده ایک سرفست ما مثلا به بسه تا اصفات به عنوان نمونه به پرگزی منبال چی هستیم تو این که این جلسه؟ بسی که این روی چرچه شناسی یعنی شما گیرانیگاه ها، مهند ها و اجمالی از آرایی که قول محل نظام شکل میگیره دستتون میاد، این دستتون بیانید یک نگاه مجموعه داشتون میشه که اتفاقی داره میبیند. سرچه مسئله داری دعوان بعد خانه این رو میشه پرانبال داد میشه با نگاه کنانو یعنی تحلیلش کرد و شعال تکمیلش کرد و امساید. نکته بعدی که خدمت رو درگران امسا پیشنهاد و توسته همین این هست که در قلال بخص روزان خیلی دنبال قضاوت به این نظریات شد. بیشتر دنبال این باشیم که محل نظام خجاه همست. چه تیب آرایی داره شکل میگیره؟ اینو به دست دورده جلسه به علمواجهای محمدی رو میکرده این تحلیل به دست دورده. در گامه بعد وارد بشید یک به یک نظریات رو بخونید عمیق و دیتر از خود استاد با منور و ریفرنس خود استاد بعد در این حدا چگونه میشوند کرد چرا این چون واقعا برخی از نظریات خیلی دامنه دارن و برای فهم و قضاوت ضاوت نازل به اونها نیاز من یک وقت مبسعی هستید دوچاره برکورد و مواجه سریع نشین مثلا بنداریم به شما یک نقشه نشون بگیم ببین مثلا این شهر اینجاست این شهر اینجاست این مسیرها هست اینجا دعوا شده مثلا یک شمای کلی یک نقطه برودی خدمت دوستان داریم بنا خب دیگه چی ارز کنم بناتون خب یه در از دوستان این بنیر رو یکم جابجه بکنن حالا بوشش حتی شد مهم نموشه ولی از این شد مهم نشه. خب این هم از این نوشه اگر ایزه بدید وارد بحث بشیم پیش بریم من تلاشم این هست که سریع بتونیم بحث رو یک جایی برس رو تو فهرست حالا یک تحولاتی فهرست داشته من فرسد نکردم در نوایه فهرست رو برس بودم من اجمالا ببینید اینکه شما نگاهتون ناظر مکلف چیست این جهاز داره توسعه در فقه و نگاه به این که آقا فقه با و با آغاز می‌شه اونجایی که شما در بحث مکلف در بحث موضوعاتی که فرق می‌خواد ناظر به اونها نظر بده و در خصوص احکام و در بندی احکام می‌خوای اظهار نظر بکنیم حالا اینها رو یک به یک باید وارد بشیم و پیش بریم نخستین مسئله ای که توجه رو میشوند گفت به نوعی داره متوجه نقوله فقه نظام فقه و فقه اجتماعی فعلا با استدارش کار نداریم میکنه توست است که همه گذرگوانا تقریبا در مکلف دارند به این که امدتا در فقه این بیان من این رو هم باز پیش ورز نمیرم دوستان از روش نگاه بحثش رو دارم بودم و ما سریع تر میتونو بیشیم تلقی رایش خوب این هست این گونه توضیح داده میشه فقط ف... ف... ف... موضوع بیشتر به احکام مکلف پرداخته ما مکلفین دیگری هم داریم حالا اون مکلفین دیگر چه کسانی هستن؟ با عددیات های مختلف این توضیح داده میشه ادبیات نخست ادبیاتی که با عنوان مکلف فردی و مکلف اجتماعی یا مکلف و یا مکلف کلان مطرح میشه و حالا اون مکلف کلان یا مکلف اجتماعی رو ممکنه به تقسیماتی تقسیم بکنن شوق مختلفی ممکنه براش قائل شدن خب مثلا فرض بترین حاجی آراکی واظن یا چرا اول خاموش کنیم که اول نه خب خوب البته من می میکنم که اون جاهایی از متن که لازم هست رو قیداً رسون عرض بکنم ولی انا این که متن خاموش کن هستن اگر همراش خاموش بشه مشکلی نداره و حتی خوب برای دروز میگونی خوب حالا بجا خب نهتونه برستان خوب بجا خب هذ درست كون كن آنها تا در واید دیگه به دست دوستان هم خواهد بسید پس عددیات اول عددیات فقه فردی فقه اجتماعی صحبت عراقی از همین تعبیر فقه کنان و فقه خورد استفاده می کنند فقه کنان است که مربوط به تکالیف جامعه است تکریف جمع مردم جمع به ماه و جمع در این فقر می میشوند. تو بحث مبانی از دیدگاه سلسطفی ناظر جامعین ها بحث شده ساعت جامعین ها یا نه؟ نه؟ هم که خود خب تکالیز فرد رو بیان کنند. تو ادبیات ها جای خسروبه ما با یک تکالیز فردی مواجهیم. یک تکالیف اجتماعی داریم که این تکالیف اجتماعی سه ست هستند گاهی تکالیف جمعی هم مثل برقای حق و ادالت این رو مجموع مردم به نصابه کل باید پیگیری بکنن و اتیان این مسئله به اینه که همه با هم دست به هم دست به دست به هم بدن و حق و ادالت رو برقای کنند. تکالیف جمعی است. گاهی تکالیف سازمانی مثل اون اونگاهی که نارد به سازمان افاس فرهنگ سازمانی برمانیز اون بحثیت یک کل داره و گاهی هم تکالیف حکومتی مطرحهی که حاکم و حاکمیت مکنده هستن فقلی مطلوب باید به همه این مکلفین توجه کنند در ادبیات ها جوای مبلغی هم به همین نه هست بدایی. من سعی میکنم که بس رو کامل مستند پیش یعنی هر عرضی هر دادم گذارش از استاد باشه و نشونه که استان داده میشه دقیقا مستند و برقای متن استاد پیش بیم خب اینجا هم با به همینطور فرد جامعه و حالا خانواده مکدفه دولت مکدفه اینها میشن شغوق اون مکلف اجتماعی پس یک اتفاقی که در فقه حکومتی یا فقه اجتماعی دارا میافتد چیست توسعه در مکلف ادبیات نخص ادبیاتی است که از مکلف فردی و اجتماعی و مکلف خرد و کلام صحبت کرد. مثلا فرض و فنگ باز مثلا در عدویت آیه میرباوری هم مکلط به فردی یا نظام در حابه تقسیم میشه منطقیه یکی بیژه که داره آهاد مردم مکلطی به طبعه ولی دارن مکلط قلم دارن میشه پسی که مکلط به جنگی داریم عرض میکنیم حالا نمیدنم دوستان چقدر این بحث ها رو شنیدن و در به این هست فرض بکنید که اقامه عدل ما گاهی برخی از احکام داریم که اگر فرض بکنید واجب کفایی نیست یکی نفر انجام بدهد نگوییم اون حکم اون تکلیف در واقع اتجام شده است گاهی نه مجموع مردم باید عملی را انجام بدن همراه با هم تا آن اتیام صورت بگیرد جامعه به مسابقه یک کل داره در نظر برفته میشه. درسته؟ مثل یک لشکر، یک لشکر به تمامه باید عمل بکنه تا پیروزی نصیب بشه. خب حالا این لابتر رو در درون این جامعه چگونه توضیح بدیم و هویت جامعه رو چگونه توضیح. هر جای علایز حریف احساس کردید مبهم داده میشه چون من مجبورم باز جور سرید بدم حتما خودتون بزنید دیگه ببینید اینجا مبهم بود یا بیشتر توضیح داده بشه بیشتر باز میشه بعد امثال پس مکلف شده توسعه پیدا میکنه در کنار مکلف فردی مکلف جمعی جامعه امثال هم داره بحث میشه دو تا پرسش مطرحه یک اون جامعه رو چگونه توضیح میدیم با چه ادبیاتی اینا جزو مانند اختلاف اساسی و در جامعه رابطه رو چگونه توضیح میدیم این هم نکته دوم این طایونه جویه میر باگری حافظ روابط درون جامعه است که حالا تحصیلش رو باز باگوزار میکنیم که از در بررسی نظری ایشون ببینن طبق روی کرد طبق سلطرستی مهور مکلفین در هر مجموعه ولی آن مجموعه است. چون میگنم که از طبق حکومتی و طبق نظام ما داری صحبت میکنید مکلف اول ولیست پیامبر باید جامعه را پیش ببرند او باید استقامت کنند و به تبع او آهات مکلف میشنند این بونه نیست که کل مردم در کنار هم ولی همینکیشون در کنار هم مکندق باشند. این تکلیف مجموعی داشته باشد. این ولی اجتماعی است که در رتبه اول موظف است به یا هم چیانی که شما لحظه احکام در نظر میگیرید. به عبارت دیگر تکاریف به نهر مستقل و جدوانه میان مکندقین یک نظام توضیح نمیشه هست بلکه از مجرای ولی تکالیف توضیح شده تکالیف توضیح شده و در همان محور رشد و تکامل میابد جای مددی هم حاجا باز به همین ترتیب میفرمند خطاب قامونی و عددیات ایست روی سمت به فضای قاملی بداری میرمند یعنی این نیست که محل بشند به افراد وقتی می‌گیم عدالت را اقامه کنید این نیست که بگم یعنی شما اقامه کن، شما اقامه کن، شما اقامه کن مجموع شما باید اقامه بکنند. باز یک بحث دیگه که اساطیب باید توضیح بدن وقتی که این گونه پیش رفتن باید توضیح دیدن که هر کلوم از مکلفین چگونه در خصوصشون سواق و اقامه مطرح میشه و چگونه اطیان تقیید مطرح میشه نگاهی ممکنه مثلا یک قوم به واسه که اکثریت اون قوم گناه کار باشند عذابی متوجه شده این نگاه یا نگاه مجموعی چنین چیز رو داره بیان میکنه. مثلا فرص کنید تو ادبیات حاجه های عرستا که مثلا فرص کنید خوش اخلاقی که میتونیم بگیم یک جامعه به حکم خوش اخلاقی به مسابقه یک حکم کلام و نحوکم فردی ملزم بوده است. میگر راه حل نشینه که اگر شما این جامعه در مجموع به عنوان یک جامعه خوش اخلاق شناختی، ما میتونیم بگیم این حوش توسط این جامعه اتیان شده. ولی کسانی باید ممکنه باشن که توش به دخلاق باشن. در مجموع این جامعه تو هر جامعهی به دقیق شما چند تا بد اخلاق پیدا میکنید درسته؟ ولی که جامعه اسلامیست؟ وقتی شما بتونید عنوان اسلامی رو عنوان خوش اخلاق بودن رو به مجموع این جامعه نسبت بدید تو الان فاضل هم این هست خب ادبیات دیگه در کنار فقه فردی و فقه کنان ادبیات مکنلت حقیقی و حقوقی است برخی از عراض ممکنه برای کسانی که حتی سابقا مفصل توی حوضه فقر و حکومتی روی که حتی کار کرده باشن هم به نوعی جدید باشد برای ما در حال هستیم هستیم من این پژوهشمون هم ادامه داده در روی آرون اساتی اون مکلبه کلان رو یک نکیت ناظر بهش ارز کردم گفتم وقتی شما گفتید مکلبه کلان باید بگید این مکلبه کلان چیه توضیحش بدید چند توضیح ناظر به این هست یکی اینکه ما این رو یک شخصیت حقوقی تلقی کنیم مثل یک مؤسسه، مثل یک بانک مثل وقت تو سابقه اسلام مثل مسجد که صاحب انوان نوشه دیگه دوستانه ها رو قادمتاً در مبارس کشتن یک شخصیت حقوقی برای جامعه به مسابقه یک کل در نظر بگیریم یک شخصیت حقوقی برای دولت در نظر بگیریم همه رو با عدبیت شخصیت حقوقی توضیح بدیم هر جا بشرفتیم یه موقع هست نه بعضی از اصافیت از عدبیت استعالت جامعه استفاده می کنند تو تعبیر اول جامعه هم دیگه اتباری می شما شخصیت حقوقی را اعتبار می کنید همین که یک هویت غرفی مستقل داشت به بیانه های عرقستا کفایت می کند که شما بگویید یک مکلب دیگر است. اون میگه جامعه چیزیه هست چیز چیزیه هست بانک چیزیه خیلی از افراده اعتبار می این یک خضاست تو فضای از دوستان، اون مکدلت جمعی اونجا دیگه بحث اصابت جامعه مطرح میشه که آلا دیگه بحثش تو فضای فلسطفیش مفصل میشه بر روی کارهای های مختلف از از فلسطفی جامعه و اصابت جامعه صحبت میکنن خب تو فضای های ارستا ما شخصیت حیقی رو داریم به مسابقه شهرون و یک شخصیت حقوقی داریم این عدبیات ها داده اینجا متمایز میشه و اینا محل دعوا میشه ها یعنی فرص هم روی همین این مفصل و خلالی انتقاد همین دو سال پیش یکی از مهره که محل دعوا براندان گفت اپا چیه شما در فقه مکلف میسازید فقه جدید دارید میارید خوجون یعنی چیه مکلف درست میکنید کنید؟ خیلی میخواهید تلاش رو آقا ما هم حکومتی داریم ولی تو همین صلح موجود شخصیت و حقوقی هست نهایتش به همین از همین استفاده بودی که استقالت جامعه و اینها یعنی چی یعنی شما ممکنه ببینید تو تا استاد بزرگوار هر دو متغیر حکومتی هست هر دو صلح نظر این یعنی نمی‌تونی چیزی مخالف به حکومتی باشه یا چیزی باشه مثلا همین نکته یک دعوای جدی می‌بینید و منو خاطر اینکه نه را falo دیگه رو بگیده شکلی. خب ادبیات شخصیت حقوقی رو نوشتم فرض می‌کردم خب تو برنامه آلسون شخصیت حقوقی اقسام پیدا میکنن. جامعه دولت و واسه حقوق غیر دولتی موسسات اینها همشون اقسام شخصیت حقوقی می‌شن تو ادبیات حوزه آرافی هم همین هست. یعنی شما یک شخصیت حقیقی خصوصی دارید و شخصیت های حقوقی در علاوه داید فاضد هم عرض کردند. در اجامعه نهادها و سازمان ها عنوان مکلق حقوقی دارن مطرح شد خب این رو هم اجمالا عرض کردم که ما به نظرمون میرسه که این سه بزرگوان نقص از ادبیات شخصیت حقوقی دارن استفاده می خواه. البته آجایی فاضل بحثشون رو زیده که په اجتماعی و فقه فردی پیش می برند. این جوبانه اون گرد رد همان فقه فردی جهد اجتماعیه. ولی مکلف اجتماعی رو بخون توضیح بدن بیران تو فضای شخصیت خوروی. تو فضای طرف مقابل و بحث اصالت جامعه در واقع مطرح هستا جای عراقی و جای خسروپنا رایه. با من احساسم این هستش که من باید کم کنم درسته؟ چی؟ چهار ست سنگی ندام به ست سکننده میشه خب این این بود که ما حالا پس بعد از بحثتا داشت فقط به نظر کامد حتی دقل ایش نگید و شنید ایش نگید حتی اصل توزه در مکلف که ساده بود بفهم. چی؟ سمارش. همین شما وقتی باید فیق شدی یه موقع فقط با این آدما کار داری میخوای تکلیفشون روشن کنی. یه موقع خود سازمان به مسابقه یک سازمان به مسابقه یک کل اصلا جدا برای موضوعیت داده که تکلیف روشن کنید نه مکلفه یه این, این الان ما بیشتر سعی میکنه بگه ما شما روزه بگیش شما چیست کن؟ شما مثلا وضوع تو اینجوری بگیر مثلا فقه کل اداره جدی شما نمدارید آیا قوامی الان فقه اداره داده آیا تو سازمان احکام متفاوتی داریم. لازمه شده که اولین مکلف بیچاره رو به رسمیت بشنستیم که این هم یک مکلفه باید درست احفامش فکر بکنیم حرف آقایون اینه حرف آقایون اینه که بابا یه سر موجودات دیگه اینجا هستن ما این آدم باید آدم حساب کنیم در فیر وقتی که آدم حساب کنیم به مزاره مکلف باید دیگران محل بحث قرارمی در فیر که آقا تکلیف این چه میشه شود و خیلی هم اثرگذارین مثلا اسکو بحث شخصیت حقوقی شما یک بار دیگه جدی همین چه که معاصر ماست دیگه و دامنه شخصیت حقوقی رو شما تا چه حد پذیرید خیلی از تخلفات مالی در مشهد جاهای دیگه با بر همین شخص مؤسسا و شخصیت‌های حقوقی با مسئولیت محدود صورت می‌گیره من نه من یا ایجا من موضع گیری کنم ناظر به شخصیت حقوقی یا دامنش یا داشت. میخوام اثر گذاری ورزش رو هرست مکنم دوستمون سؤال کردم یه موقع شما فقط احوان مکلف رو دوزی میدید تقجیر نمی کنید بابا دیگه مکلف فردی نیست نمی نیست ولی یه سه مکلفی خرب شده آقای یک دو سه چهار میدن یه مؤسسه میزنند یه مؤسسه مادی و اعتباری میکرد من اینقدر آورده میارم فلانیم اینقدر فلانیم اینقدر ما به اندازه آورده من پاسخ خواهیم بود دو مؤسسه شرکت شون اندازه همین آورده من پاسخ رو هم طلب کار به من قبطی نظره نمیتونی بیار پول شخصی من برداریم مؤسسه یک شخصیت روی متفاوت و متمایزه جدا داره مالک میشند و مسئولیتش مشخصه، اموالش مشخصه سرق داره با اموال من و ایشونو. و ایشون. و, و های ها دیگر مکلفه که اتباه خیلی از مسئول اجتماعی ما که این اینا رو درست تازه داریم فکر کنیم که آقا ما این شخصت حقوقی چه باید کنیم. پند، همین که شما توجه کنیم آقا مکلفین دیگری هست. به مشکل الان مساله انقلاب کل نیست ممکن ه اتفاق یه اتفاقی باشه که ما تکیف اینا رو روشن نکردیم تا چه حد اینها هستند حالا من بخوام سوال بزنم خیلی یعنی <تصفح> باید وارد همون فضایی یک ترمیه خودمون بشیم مثلا فرض کنید که بحث بحث ات... اشاره میکنن بحث اتحاد مالکیت مطرح میشوه اشاره گذرا اگر دولت و بانک دو تا شخصیت محوری و اموال دولت و بانک یکیز در چه بانک دولتی دارد مال دولت است آیا بین اینها ربا معنی ها پیدا می کند یا نمی کند آیا من می به خودم ربا بدم و خودم ربا بگیرم این حرامه شما از اون در شما یه بایی ربای سازه مواجه بودید الان که شخصیت حقوقی براتون مطر شد اقسام دیگر مکلد براتون مطر اصلا یه سری سوالات دیگه مطمئن میشه کتاب بمشتن از به همین ها کتاب نمشه الان هست هجای همین رو توضیح میدن که آقا دولت و های دولتی از اصلا روا بدن بگیرن من الان باست تلبن و ایجابن نمیخوام قضاوت بکنم ولی این رو فقهیت توضیح که شما چی میگید انقدر ربا رو تو شکل که بانکی محکوم میکنید؟ نه آقا شعاب بانک ها به بهم میتونم ربا بگیدن میتونم ربا بدن بانک های دولتی اینو که اکثر سرمانشون دولتی میتونم ربا بدن ربا بگید حالا این مثال ها بود که ما یک مقدار سزا واضح درشت پس مکلفین مختلف مشخص شد تو تعبیر در خصوصه مکلفین هست یکی شخصیت حقوقی با شخصیت حقوقی این ها توضیح داده میشه یکی با فضای استادت جامعه و انصال هم که دیگه از این حقیق سرخ نظر میکنم فقط اینو در نظر داشته میشه که در مقابل این دیدگاه استادت جامعه مثلا آیه علی دوست موضع میگیره بحث استادت جامعه رو به نوعی داره علامه تبار تبایی در علمیزان مطرح میکنه کم کم یک البوست مثلا این موزه میگه آیه فاصل باز به همین ترتیب اینها رو وایزاتون حقیق میگذارن خب مسئله بعدی توسعه در موضوع هست بصوا لاغت چه احکامی باید بریم چه چیزهایی بک دارم اصلا آیا فقط افعال جوارعی من شامل احکام الهی میشنن یا مثلا سوء زن، حسن زن، اعتقادات اینها هم احکامی دارن. می توانند موضوع خوش قرار بگیرند. این هم یک ناهی توسعه در فقه است. آیا ما احکام توصیفی هم داریم در یعنی فرض کنید این همه آیات قرآن که همش احکام نیستشه خیلی جا داره توضیح میده، انسان رو توضیح میده، خیلی مسال رو توصیف میکنند لخو خب مثلا تو ادریاز های میگن که خب بالاخره من باید نسبت به این توضیحات روایی و قرآنی از هستها منزم باشم یا نباشم یک یکی دیگری که در فقه دارد اتفاق مبتد توسعه در همین موضوعاته مثلا فرص ما فقه اخلاق واقعا اخلاق هیچ یک بسیار محجور در حوضای علمی هست اینکه عرض می از عرض نیست. یعنی از فرض کنین مهمومتون مثل بابا اینها هم این رو بیان می که اخلاق هم متحدد زیادی متحدد از همین اخلاق عرص توی این رفتی ما به سمت اخلاق راست توی اخلاق و حد و شما حالا ببینید کتب قدم ما در اخلاق خب این هم باز یک ضراب نحل توصیه من بخوام اینها را بخش رو با فضایی که به همین دوستان خیلی دیگه اشاره بار بعد چی دارو حتی اقلی ها در خاطر دوستان بمونند بعد اینو با تفصیل بیشتر سرکانه با مثال های واضح بدونیم اصله کسی تا رو توسید بدیم چی جا دیم میگیم حالا بگیم دهیزه کاریشو اینها رو با یه سطحه بالاتری مرد هم های از مثال درموش تعمل رو کنند در درمیان را در روزیزه های بعدی پی بگونند به بیدن یه مثال های علاقی مفصل این رو میشنه استدار میکنه که درمیقه تربیتی بر شخصیت شخصیت در شخصیت‌های های موضوع ما در فقه حکومتی یک شخصیتی به تفسیل بایستاده دفاع در فقه تربیتیه خیلی براش مهمه که توضیح بده آقا اینقدر این فکر رو به این افعال جوارهی تقلیل ندهید موضوعات دیگری هم فقه باید بیر پردازه به فقه تربیت مسئله ماست خب مثاله ایشون استقلادهایی دارن میگه با همه ی رفتار های اختیاری مکلکان و هران با آن ارتباط دارد و حکم شرعی دارد میگه اگه شما میخواید افعال جوانی و قلبی رو بیرون کنید شما باید دلیل بیارید شما میخواید بگید یه فعلی من دارم که این حاکم ندارد چرا؟ حالا جدای از اینکه مثلا روایات رو اینها نازد به هر از اینها افعال میدارد بیان روایات دیگر برای اثبات اینکه دانش دادشتر باید خوشم رفتارهای های و باطنی را می کنند. روایات است که باس الزامی و ترجیحی درباره افعال قلبی و درونی بیان کرده است. مانند روایاتی به جه... جهاد با نصف و کف به یا یادگیی و دانش آموزی و منان تفکر و عبرت آموزی یا به ایمان و عبید دستوری اینها ها خوبشون تو بسید طریق اینا درست میکنه این شما میخواد یک فرزند رو تربیت رو کنید به یک موقع میگه که من چه نطبتی باید با تربیت این بر بر بر بر و همه این ها تو طرف تربیت مسئلهش چی میشه مسئلهش میگه شما که فقط به نماز خوندم روزه گرفتم این که بسنده نمی که رشد تربیتی او براد مسئله وقتی روشت ترگیتی مسئلشون گرایش هاش گابره هاش عجلش هاش همین اینا رو شباید از اسلام برایش مباحثی عرضه بفرمونید خوب در ویژگی های موضوعات اجتماعی یک بحثی را آجای عرصده دارن این حالا از این نیست که یه مختار کمک بکنه به توضیح موضوعات اجتماعی دو یک دیبگاهی که اغلب ازاتید دارند یعنی همه تقریبا این ازاتید که من دارم ارز میکنم سکر می‌کنم حالا من سعی می‌کنم با احسیات بکنهای کلم بودن ناظر ولی امدتا این گونم که معتقدم اگر ما به افعال فردی هم بعضا با نگاه اجتماعی نگاه بکنیم ممکنه از اجتماعی به دست بیاید یعنی یک فرد شما یک موقع به مسابقه یک شخص احکامی متوجه ندونه یک موقع به مسابقه شهر. بند. یک شهروند یکی چیزی ممکنه حضرت امان بیرفت مثلا در فرایل تدبیرشون خب خیلی از قبائل حکومت اون موقع رو به نظیمیت میشهد سقه فردی رو خواهی خب من میتونم کورسم تو منزلم قربانی ولی او برای خودش این جواز رو نیگیه در اون کشور این کار رو انجام بده من به مسابقه یک شهروند احکام دیایی دارد متوجه هم میشه هم. خواهی عرصه درمسه ویژگی های موضوعات که این موضوعات بده توصیح پیدا میکنه برکی از موضوعات از جنس موضوعات توصیفی نیست و موضوعات جوانهی و این ها بخیم موضوعات فرموضوعات ابتدای فردی است که ما داریم با نگاه دیگری یعنی با نگاه حکومتی بهشون نگاه کنیم. بیشگی های این موضوعات مثلا چیست؟ مثلا تکرار پذیریم. فرض دهت هم اشتادایشون رو میزنند. مفصل یک بیشگی خیلی مصبت های عرصت و نسالهاییشون. مثلا میگن دیگه چراغ قرمز است. از چراغ درم است. یک موقع از شما میگید که آه من از چرا کنه قرار درد بشم میتونم طوری درد بشم هیچ تصادفی هم روح نده اما حالا در نظر بگید این عمل تکرار بشه یک تکرار پذیری و دو تبزیجا همه این گونه عمل بکن خب شهر به همه یک هیچ مساله مردم نامود میشه پس یک سینک موضوعاتی دارید شما یه فرد میخواستی از شراخت این مزرد بشی خلیفن با تحلیل فردی میکفتی حقیقی کسی موقع زایه نکنید مثلا نصر و شب تاریک هم این مزرد هیچی هم نیست اگر ولی مثلا به این سمزرد که شما رد شدی شما که روحانی هستی و ملبوب مثلا ملبو یه عرصتست داریم عرصت میکنند مردم شما رو چشمی قلبون نگاه شما اتا به بزرد شدید. اونم, اونم رد شد. اونم رد شد. خب نظام به هم میریزد. مبینی این یک سنف موضوعاتی دارید در میکار هموند. تو مبینه تحلیل تحلیلش بکنید. ولی این اجتماعی شما بشینید در جایگاه حاکم. می‌بینی، اگه همه بخوان اینو زیر پا بذارن، سنگ روی سنگ بند نمیشه. این موضوع چه بیگه اگر تکرار پذ تنزیجی آثارشون بگذاره آثارشونشون میده و نیازمند تدبیرند نمیشه شما تشخیص رو در اون موضوع به افراد واموزان بکنه دولت باید تشخیص شده شراخی باشد یا نباشد نمیشون شما بگید خوب بشید مردم رو تصمیم بگید که الان از شراخی همست بشن ایدیا نشه خب تا الان چه گفتیم؟ تا اتفاق افتاد. توصیه در موکذف در اتفاق موجود موکذفین دیگری دارن از رح میشن دارد در موضوع دارن اتفاق موجود افعال جوانهی افعال توصیفی اینها داره احکام توصیفی دارن به نامی بنامیشنن و, نام و بخشی از احکام فرمین هم با نگاه اجتماعی دارن حکم دیگری دارن ها یک توی یک طلبی ممکنه کسی بگوید نمیدونم از صدر فقه تا نهایت فقه را میشنم با نگاه و حکومتی نگاه جمعه وقتی مثل آقای فازر ممکنه بگم که نه اجمالاً بلکه از احکام این گونه هم شما با نگاه و حکومتی بهشون نگاه رو میحشم می دیگر مثلا آقای فازر مثالشون پید و فضوگیه. یا یعنی شما تو فقه به فضولی و توی یک فضا ممکنه قبول بکنید تو فضای فضا اجتماعی اگر اجازه دادید همه همونطوری هم باده دیگر هم دیگر رو بفروشن و بخرن ولو بعدم رضایت شرک باشد خب این نظام به هم میلیسته این موضوع رو شما با یک تلقیه دیگری موضوع امتداعا یک امستاده موضوع شما با تلقی اجتماعی با تلقی حکومتی وقتی که نگاه ها بکنیم ممکنه حکم دیگری خب موسیقی. یک تلقی بسید رو ترمیده چی؟ همه که خب اونجا دارم بیانات اتراتیز رو که من دوزنی میدم و افسون در اون از خودم خب تلاشم این هست که بیانی نداشته باشم مثال بی افضولی مثال جای فاضل هست اینکه آدم را چی حکی در تضایه حکومتی باید بدهیم به در حوضه بی افضولی را آجای بیان نکردن در اونجا اما مطقیقی گفتن این بودش شما ما نمیتوانی به این حضوری رو قانونی بکنیم در کشور و بگیم باقا اجرا بشود اگر چنین پدیدهی در نظام در یک قضایی حکومتی با این ابعاد میتواند سازمانها رو به هم نظام رو به هم بریزه حکم دیگری بیدا میکند و نمیشود قانون میکند حدا این خابل فضی از عیسی حکومتی نیست میاند مثالی این که دیگر کنه می خب یک ساله هستی یک ساله دیگر هم خواهد الله ایشکشی شد. اون می‌گذارد با هم از هم یکی که خدمت همستان فرمایش الازالی متین هست و درازمش این هستش که ما جاییم یک تل چندین تل براتون باشیم و فرمایش در هر یک از اطلانتیز رو با استفلاعی ها با تفسیرونی ها وارد بشیم و با واقعا حتی در مدعا هم هفته نتونستم توی این اصلاعی در پوشش بدم همه این نوازش رو نمیشود. دیگه شما به برید تو ریز استعداده، اغردن بعدی از استعدادهان رو دیدید تا اینجا مثلا احرافی استعداده داشتن اغردن اجمالن ولی گستنی مقایست واقعا زیاده این یک نکته یک نکته یه دیگه این که خب مثلا فرض کنید که حالا اجمالاً به خاملی سوال یک پاسخه ایجابیتر هم به نظر تابع داده موشن مثلا فرض کنید که تو ادبیات شخصیت حقوقی که آقایون از شخصیت حقوقی با که صحبت می کنند استناد می کنند به روایان به سیره فرض می فهمید میگن وقف مسجد اینها شخصیت های حقوقی هستن که در دلیل تاریخ بودید درشان مکلت می شودن یعنی مثلا معروفه انبالی دارند. مالک می شود به روی می شود به سامکار می شود این رو بیان می یک احکام یا مثلا بیت المال بیت المال به این مبعروز می‌شدن. بگن که بیت المال فرد آدمه نه. بیت یه یک شخصیت حقوقی است. حالا این شخصیت حقوقی رو ممکنه یک فرد یا افرادی به عهده بگیرن انجام اموراتش. را. اما خودش که داره مالک میشه بر رئیس جمهور وقتی مثلا که یکیتی ایمین بهش میدن به مصابه رئیس جمهور این که شخصش نیست که مال عنوان رئیس جمهوریه یعنی عنوان این رو تو تاریخ فقه برسید میکن تو شخصت موردی یعنی این یک مکلف است این مثلا یا مثلا تو سرمنتون ارز کنم یا هم روائین رو میشه مطرح کرد هم اصای ستمت بگن مثلا سنتی که جایی بوده فرض کنید، حتی مثلا اغلایی هم اونهایی که برای خیلی مطرق از دیگه و رو خیلی زمین میدن میگن حتی شما مثلا تو اقوام وقتی نگاه بودید، تو تاریخ بشر برید مثلا میگذار این زمین ها مال فلان قومه بختم مال فلان قومه یعنی چی؟ این مثلا مال ایرانه اینه؟ گفتن نه، مال آقه فلا ایناست دیگه که امنه یک زنوی هایی مال عنوان داشتن. طبعا. حالا میخوام ارز کنم این عدلیات ما مثلا هست اما یه نوکه دیگه میخوام ارز میکنم این هستش که ممکنه بخی از مباحث ما الزامن روایی پیش نرد یعنی استدلالی استاد استاده محترم دارست در اقلی باشد یا خب این مکنبه اگر شما میکرد اقلن دوزی بری که این مکنبه هست حالا اونا ها شما جزء علاوه بر هریز به هریز از دارم صحبت می‌کنم، خیلی اینجا رو بروت نمی‌کنم. یعنی احتمالاً ممکنه است روی کردن از کل اساسی در طرح بحثشون مبتلی استفاده ای عمیق باشد. پیش اغلب من قائل به این هم این هستم که یک مسئله دیگری دست به جامعه هست. فرض این که ممکن بشه ولی تمام اینها رو حالا علاوه خب ممکنه در کنوش علاوه نقلی هم بیارم ولی استفاده دل عقلی هم توی خودشون بیارم. پس حالا این توقعی که از از آنی در اینی که درسته اون اول هم عرض کردم اون چیزی که از اراز حقیل خواهید داشت در مجموع این جلسه فکر این باشه که یک سه نقاط اختلاف کجام ها است و اجمالا چه آرایی داره مطرح میشه دست اون بیان بعد واقعا وقت نیازده یه خود حقیقه همه این بوده شده مثلا یه, یه, یه مفصل یک به یک شروع کرده منابع همین رو دیدن وطلا هست که خوب برای هر استاد در تبدیل نظریهش کتاب مجزنا چاپ بشه در است یا و رو با تمام هاشی ها رو ها رو داشته باشه ولی خب این واقعا با باید دیگه هم همه ا فرصه چه بگر هم داریم؟ خب یک نقضا باز پیش میدم حالا باز اشکال نده ما هر حدی از بحث رو رسیدیم دیگه که بتونیم با قضا یک جلسته پیش بیان و دوستان رو هر چه سوالی می‌بینم مثلا هر از بحث و استینی ببینم به دوستان عرض کنیم یک تفاوت جدی خوب فقط در گذشته دارید یا یک تفاوت جدی هم در حج و هم در موضوع منطق نگاه شما به موضوعات و به احکام مثال بزنم اصلا قبل از اینکه بارد باشیم بذاریم در حیث تا موضوع ساده بانک یک قسم معلول رایج میداری از بانک رو تیزیه میکنه میگه خب اینجای بانکه این عقض این مثلا مضاربه هست اونجاش مثلا فلان عقضه اونجا فلان عقض مجموع بانک با نگاه های جزئی و حکر یادن ناظر به این جزئیات ناظر بهش تداوت دا میشه یک تحقیق گونی آقا نه بونگ رو به مسابقه یک گل هم باید نگاه بکنید ببینید چیکار داره میکنه در مناسبات جشن سالجش سر آیه پسر پناه این رو تاکید میکنه میگه خب یک اتباری در بانک ها داره میوفته میگه لازمه این شيبه بانک داری فاصله تبعاتی لازمی این شیبه بانکداری اینه که منابع از آهاد جامعه جمع بشه و اقلیتی برگردار بشه و در و اینها دست اقلیتی باشن بقیه ها ها رو با توضیح پیش برن. کل رو ببینید این بانکداری اسلامی که اینها هم از علت بعضا این ارزا هرزگاه مطالعه هم بوده تو فازای بانکداری ما چه تلاشی کردیم که خب همینه یعنی خب این فازای عادیشه که دوستان مواجه آشنا هستن یک به یک عقود مختلفی که مطرح میشه میگن خب مزاله از اطلاام، اطلاام و هیچ ما این احکام، هیچ ما از این برگه های که امضا میکنن میگید دیگه هیچکس در جامعه بهش پایبند نیست بعد اشکال میکنی میگه آقا این چه بانکداری اسلامی درست کردید میگه ببینید اینایی که من ندرشتم که درسته بعد در اجرامی که به ننجی سآل میشه چه قامیه تو نمیشتی اینطوری نمیتونه درست اجرامشه باقیمون شد اجرام یا تو چی نمیشتی که زمانت اجرامی کافی نه دو دو دو دو دو دو. نگاه کلیم گرمه به موضوع باقیم به مثالی که پولی. و حالا شما ممکنه این رو در برسی از این ها این کل بود ممکنه فرایدی همین نگاه ها کنمی بانک امروز به مزاره کل اینه، حکم مواجهه من با این بانک اینه من باید این موضوع رو تغییر بدم به سمت موضوع جدیدی و ناظر بهش، مثلا به ساختاره ببینید این رو مطرح میکنن، میگویند ما تو کار میتوانیم بکنیم در فکر یک، بنشینیم در حوزه علمیه، در کنج و حشرا قبل و تمدون طلبی مدام برای ما موضوعات بسازن هر روزی موضوع جدید شما میایم از شما استفداع می نمایم و بعد چما مدام حکمش را میدهیم خب ما منفعلیم این یک راه یک راهی که ما فکر کنیم آقای این طبولی موضوع چی اطلاف بوده در جامعه موضوعه شما باید کاری بکنید که موضوع عاد سمتی برود که مجبور بشه شعر و احکام متحاصل با خودش رو بگیره شما باید کاری بکنید که مدام مجبور به اکیل نیسیه نباشید این شو نگاه فرمایندی دوتا شد نگاه کل نگرانه نگاه فرمایندی حالا با تو دیدگاه اصافیت برید میگیم داره تحمل جدی این تنمید در بابا من به فیخ من نمیدونم کنستم یا نه. به شده تو فضای مختلف اونمانسانی ما، ما، تنهایی جدی داره میزنیم این مواسط به نظرم واقعا تو این مقطع حالا این زحمات رو هم دوستان در ما بزامین ها به نظر خود یک پیچی هسته، بابا هم اگر این مواردی که اساسی دارن یک این دردواب بخواد به یک وارد میدان بشه واقعا خیلی چیزا تحقیل خواهد کن حالا این علاویت من رو هم ممکن بردی مورد امتباط قرار بدم چون دیدگاه های مختلف در میزان تغییری که باید اتفاق بود داریست ولی اجمالاً این را همه متقدرم هم که خلق های جسیده مدرسه حوزه علمی ما خودشو رو متصدی، اداره جامعه واقعا ندیده کشم انداز نمیستی، قوانین بالا درست اینها علم دینی، روان شناسی، خب حوضه علمی ما این زمان متصدی اینها بود، خانم مادر اداره می کرد، اختلاف می کرد، اول خب اینها دید، همش رفت کنار، از نگاه دینی، آنونی که باید دیگه ای رازی اینا اینها نمی کنی. در دقدقه خیلی از این گوستان همین فرایند ودایت و جامعه هست به جامعه شما ندایت کنید شما زید توقیل که هم موضوعی ایجاد کردن به این این فعالی برخور کنید که جامعه به سمت تعالی ببرید شما تحت داری چشم انجاز داری سند بیست ساده داری, داری. خب دیگه من چون کلیت موضوع کنم مشخص شد از هفتیدات مستعدات هر کنون از ازادیت رو بخواد چون دوستان می خدمش و ها هست ببینن پس هم از یک مبدلی ایک نکته مهمی نکی دارن میکن آبا یا آبا این هم این هست مباد نظام اولویت ها نظام احتمامات شارع را پیدا کنیم هم در موضوعات و هم در احکام که بعد شما سیاست اکوزاری بکنید در جامعه کتوم اولویتو دیدن بچیم از اجتماعی اولویتو دیدن اینو سیخ کتوم اولویتو دیدن را اینام رو کنید از اولویت اسم بایدن از اجاب بشن را میرشن نکی فقه یعنی تیم نرنهی که از آنها برود جدی یا مثلا نهدهی بودم چه گونه هیش؟ اون نگاه خراینده یه باز مثال بزن به مثلا غرمت شراح و بحث تدریج در احکام در اسلام نشون میده اونهایی که بحث خراینده یا مثلا اونها خوبینا میتونه راحت مستاند خدا نخواهد میگن پیامبر که خواست جامعه را اداره کند و به سمت نقطه ایدئال و تعالی ببرد برای جامعهش توضیح مسائل منتشر نکرد بگوید جامعه بیا این را عمل کند تا رستگاه شدید پیامبر گام به گام مردم را پیش بود شراب یک حکم ثابت از ابتدا نداشت ها مسلمان شراب میخوردن تو مکه شراب بودند؟ شراب بخش به مدینه است. گام به گام شما توی یکی موضوع میتونی سرپرست نکنی گام به گام این ذهن رو تو فقه ما اصلا نیست ذهنیت فرایندی تو فقه ما نیست شما بگید من جامعه رو ایم روز ایم روز تو ادالت خواهیمونم همین سفرست یعنی یا این درست است یا این غلط است نمیتونید اینو در ازدر که من یک افقی دارم ممکنه برای رسیدن به این افهم هم از یکی مدیر پرپیچ و خمی باید از تعمل های تاریخی باید زد بشه هم. میشه ادالت هایی که از ساختان میزند. آیا این تلقیه گوستان چیه؟ میفهمن نظام اولایت های شارعه و مشخص به جاروه مداد فرهنگی عبادیستی. بسیدن من اما از زمال احبادی ایست متوجه به بعضیاتی کشور متوجه به و این یکی به مساعدی یکی فرقی دادیشون کنس میگذاره بایشون میتونست می هر اسم میشه، تو هر داری میکنه چون که به صرف یکی سیاست مدام نیستی ترقی تلقی در سخنه و داید رفترین میکنی هم گذاریم این ها همینه نظام هست داری میبینید خب حالا ایشون آیه مبنگی بیاید که ما حیث موضوعی موضوع رو باید بشرفیم حیث تخصیصی و حیث اینها رو میگذرم و ببینم که وصلا این مبنگی این موضوعی که مطرح می‌کنن اینه توی یه هر موضوعی که شون مطرح میشه چگونه موضوعات رو مطرح برسته بکنی یه موقع از موضوع برای شما مطور میشه شما میگهدین هش نشید یه این میکنه نه برای از نیده شما اول موضوع را ببینید میتوانید در فقط برسمیت بشناسی یک حیث موضوعی موضوع یعنی نازب فعل مکلم هفت یا نه اگر بود، گام اول رو پیش رفت گام دوم، حیث تخصصی موضوع را بررسی بکنید و میگهد این نیست که شما فکر کنید که برای بررسی. و باید بسیار این عرصت به متخصص رو خیلی جواب ققیه وادد بشه و در گامل سوم در اون نظام اولادیت ها باید منزلت این موضوع را بسنجی و بعد ناظر بهش خوبید همه اینا رو بگذارید بگذارم که تکاملی رو هم در آی بیر و آی خود صبح نام شدید که اجمالا ارزید در احکام بفرمین ببینید حالا این رو من باید سری کنم با دلتر باسه خودم که من الان خاطرم نیست که ایشون درواب این که ما موضوع بسازیم دینامیک داشته باشن ممكن داشته باشن اما من حاضر هستم شد. حاضر هستم باشم اما ایشون در مواجهه با موضوعات منفعل نیستن یعنی نمیشه نگاه انفعالی به موسو اسوسیون نسبت داد ایشون معتقدم شما هر موضوعی که آوردید وارد شد باید در ادبیات وجود تحقیق کنید دوباره بکنید من هم از تخصص شما اون پیدا بکنم متخصص یه موضوع رو می پیدیم. تو این مسابقه از موضوع که متفاوت بشه. و تو عددیت فقیسی تو موضوع بیاد معنا پیدا بکنه. ممکنه شما موضوع تغییر بدید، ممکنه شما موضوع اصلاح بکنید. تو عددیت های موضوع پرداخته می شود در فقیق. اینجا نیست که مستقیم بیاید منم حکمم را دادم و تمام. تو عربیتهای قوامی هم حالا به نوعی حالا میترازم ذهنتون خیلی برای کرده شد. سای قوامی میگوید که اسلام این کونه نبود که بگوید گوید غلط هست. سؤال میشد اسلام پاسخش را میداد و تطرفش را در نحوه پاسخ دادن انجام میداد. ظاهر اینه که ادبیت آیا قدردانی هم بیرون شد انتقادی وش همه سوالات را خارج می‌دیروی ما ولی اونجا که شنیدی که پاسخ کلا که باید میداد نه این پاسخ مگه سادی شامینی حلال است یا حرام است؟ یعنی یک به بازنگری در مجموعه خودم از آن مزه میگم این موضوع که تو دری متقاعد میکنی که ادبیت ما اینکنه تحلیل جام جاپانی شویم ممکن تحلیل دو من میانمش دو عدویتی فیقیم چیزایی گیری ران که میدونم. فلسفهش رو میگوام رو ببیندش با یک عدویت دیگری موضوع رو باز تحلیل میکنن تو فضای مبلدانه این موضوع پس موضوع پرداخته میشند. احکام هم موضوع اولویت بندی میشند. پرداخته میشند. احکام هم اولویتهایی دارند. تو ها میدرد این بک میدهیداره با ابزارهایی که از باید س کارآمدیش را بررسی کنید. اگر کارآمدی نداشت باز میگردید نقطه اولند یعنی مدل حرز مسئله رو دارید اونجا باز می‌گردید نقطه اول یا موضوع رو اشتباه شناختید یا حکم رو اشتباه دروردید بالاخره یکی از اینا باید خطا بشه میگه. بالاخره شما مسئله جامعه رو حل کنی ما فقیمی نیست که میدید من قطفه دادم به من چلقیش باید فقط بابنید مسئله جامعه ها رو باید حدوانید موضوع رو، مشکل رو باید داشت تو ادبیات خودت باز تحلیل کنید اولنیتشو مشخص کنید خوشمشو باز در اولویت بیان کنید رفتی باره به سخنه اجرا چیک ببینید چه شد این تا عدد تا این بیرگاهری اجرا به نوعی هست سخنه ا در اینکه من موشن رو درست بدم یا ندادم به نقطه های حال حق یا ندادم به لغایی حق کار بکنه دیگه من بکنون جامعه رو سر پرست سوالی هست بزن بفرمیم بفرمیم من دیگه نمیدونم اونتونستم با صفح رو برستنم یا؟ نمیدونم بفرمیم <m> o <hosted> país <im commencé> خراینده بحث داریم نفتران پیشونیم نقطه نقطه کاملا درستیم متاب مسئله اول اینه که آقا فقیه شما اول بانک رو با یه نگاه جدیتری نگاه بکنن حالا حکی به در حاله اجراش یه چیز دید. یک دوم مسئله ما اینیست که فقط مشترید یا مراجع تقیید ما به این موضوع آنکونه که باید نگاه کردن و نکردن در کردن مسئله یک ساختاری در نظار ما است که در اون مجلس شورای اسلامی می آید قانون تصویب می کنند شورای نگهبان با زبابت اسلامی رد می کنند و مجلر تشکیل مسلحت به راحتی درست مسلحت در واقع چه می شود دوباره تصویب می شود آیا این نحن مسلحت سنجی از آغاز انقلاب تا اکنون صحیح بوده است یا نبوده است؟ جناب آیا خسروپنا کتاب نیمسند سالهای پیش درباب مسلحت و خود این منطقه مسلحت در اقیق امامیه که منطقه جدیست دار این مسلحت سنجی کودش کجا در عوض مسلحت را چیونه باید سنجید؟ مسلحت بودت کنید با بودار کنید کاشنزان یا امریکه حضرت امام نگاهش این نبود که یک شورای نگهبان داشته باشه یک مزیمره تشکیز و این ورزه حضرت امام نگاهش هاست این بود که مسلحت را همان سوقه های شورای نگهبان با نگاه فقیحانه باید دهاز کنید و چون تقاهت ما این گنجایش را نداشت به این روز مبتلا شده ایم. آیا خسروپنات و اما خزن کتابای اخیرشون هم اینا را خاشم نه بود کنید. این صافتار شویرون درگان از به حضرت سوی بخشش نمیشه بیشه. یک نصیب ما در طور انگلاب اومده اون جایگاه مسلحت سال جای خودشید. یعنی در اصلیقی مسلحت ایمان باید محکم اصطاب و دفاع کرد. کسی که مسیلحت روش جایگاه ندهند خب عملا فقه نظام تا اینها در نمیدند. مفعل کجا هست؟ مفعل در پنجش مسیلحت و نحوش هست. یکی مسیری شد این مسیری که شد به واسه اقتضاعت انداله رو بگر امام هم این مسیل رو نمیخواست. الان امسال رو خواست. تو بدانهای این رو امسال رو مشکل تون همینید. خب شما وقت تو ارسی فقاحت تون همه اومدن این مسئله رو به ا این نهلی مواجبا مروعات مشکل دارد کم کم میرن بزن به تغییر ساخته ها برمو با یک بس با یک مشته نمیشوند هیچ چیزی این مسئله این علاقه مثل های عرستاون ها هم همین بود دیگه این مسئله مثل اجتماع نیازمن تدبیر و نیازمن نگاه کنانه اون تمام از علمون اینه ای که گاهی اون سطح استقه ها حکومتی که بدوند پیشنهاد بدهند ببینید آیا خوستانوینو بحث توی مثلا آیا خوستو یک مثال واردی که زیاد نمید رحم بکنن مثلا آی شاهابادیه که آی شاهابادی ویفتی که پاپکی به باکی مفاجر شما بود به این پسنده نکرد که این باکی هرام هست هلال و, و به این پسنده نکرد که بگه از صادوگان های در این آقای شهاروانی ساختار محتماریزی ساخت به اسم شکل های محمد است داری از خود آنها از می به فضایی دیداران دیشت ساختار ساخت که پاسم یک نکنند ما داییم وشنیان این هست که اصلا پیشنهاداد این تیپی پی ساختار سازانه پیشنهاداد نازم چشمنداد برنامه اصلا هنوز که میدون فکر نمیدون کم کم ثقایت مبید تو میتران است وقتی که اومد حالا دیگه این تو باید با هم فکر کنی ببینید آقا چی کار کنید که از مجموع این آرا به این نگاه نزید میشه از قانون یعنی فخری که در شما در بود کامل خودشون در, در اون از کاری میکنم جایبای بلی ببینید این گونه ببینید که شما میخواد جامعه ایران و ملت جهانی، ملت اسلام تعبیل دارید اداره بکنید ساختار میخوادی اصلاح دارید به چه میزان، به چه تراز نیاز میازدارید این بعد تو و با کم کم میشه حالا شما اگر برای یک فکر خب حالا این با چه بیاد این یا اون چه گام پس اون دلبره دلبره این که فتبای فردی مرجع تمرید که باید صحیح هست بله، رو برساخت راش نزیده ما گام اول این هست که خوبه های ما هست بایشون به این کار دمینام و این رو جزوه اشتری تقاهت مثلا همینجوری نیبا کنید در ها توسه در ها که مثلا بسروتنانی شما اصلا احکام لخیاری دادی بله لخیار این آقا مکلبه اجتماعی هر سی هر شده دید مثلا امران هر اصلا اجتماعی این رفتار اما شما رفتار احکام لاخبوردی می دید آیا چیه آیا خوستفنا می میگم که شما چی قاید بکنید های فضای یک نقطه مطلوبی باید به من نشون بدید بگید جامعه مطلوب اسلامی این شکلی حالا بعد... بحثایی هست که بعدا میرسید ما ولی آنها چون با بحث پیش داریم پیشگیریم این رو را هم هم از کنم که دوستان, شده است دوستان شما دست دارد بریسن فضایی که دوستان میگن چیه؟ برید شما یه موز که تا الگان همین حکم ازرز مکم نفس رو بیدید خیلی شما اول باید جامعی مجلور رو توضیح بدید لبابط در جامعه مدروب رو توضیح کردید انسان اونجا چکنه از ساختار ها چکنه از بعد ابزار سنجه شید جامعه موجود داشته باشه این توش موجود نیست تو اون انسان قلبی هست به شما وقتی میدید بسند پرسش پرسشنامه کاری پیماییشی امسال ها که فضل اون روزه تو لبابط شناسی امسال به جامعه شناسی، در این امر تر سن نمیبینی مشکل، اما چیه؟ خودکشی است، دلیلش چیه؟ به تو سباات، فرای قومی، بنابراین شما یک پدیده اجتماعی الهاشی از جنازه بشور بدید. این آوادی که فرایندگی و سطح‌شناسی به نظر نگاه می‌کنه میگه شما جامعه‌باطلت توضیح بدهید. که اون جامعه مثلا خودکشی نیست یا این سطحش قابل تعریف باشه. این روابط محکم است. جامعه موجود این شرایط رو داره این مشکلات رو داره این معزلات رو داره حالا توضیح داری چگونه این وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و مدل انتقال بگه این همه این ها به نوعی با فقاحت مرتبط داشت حالا این ممکنه بسیار های این ها این, ها این ها انسانی هم این شما خود فکر نه هم این همین ها هم فکره ممکنه از این این چیزی که آقایی بودم میگم همین هستی رو ارز احکام راهبردی بردی و احکام ساختهایی ساختارها طرفاً عمر اوغلایی نیستیم جمعه یا اگر شو بردون میگم بان خیلی چیز داریم اینا اوغلا رسیدن م? کدوم اوغلا نظام نیداری سیجیشون همه هم تحقیل رو میسته یه نظام دیگه چون رو دیازم تنبع داریم و یکی رو همه اقوضایی که رو نکرم کنن شوان این بانکش داریش رو مودل های بانک داری داری در جهان و ما رفتی مودل امریکاییش رو رو رو آوردیم یه حتی چون مودل آلمانیش رو می آوردید یکی مودل یابانیش رو که با سرعت امتبار داره اینقدر توش داری نیست این بانکای خصوصی وضعیم اوغلا او اوغل درگاه آقایون همین میگن شما از من یه فرقیز من یه گوشتشی شما میشهی هم کاری میخوایی تو جامعه میکنی شکی نیشد آخی بس هم آمانی کاملی خب اصطلاح بس هم باشن جلسه دنس الشاطئ حلو... في